امیدوار خدای مطال اونایی که میخوان در این فطره ها باشن اونارو رو حفظ کنه هر فطره پیش من ادهی رو میخواهونه کمراخ بکنه برد و بعدی شدیدتر از قبل مناصلی آنبر این فطره خیلی خطرناکتره برد جا همین که نگاهمون به خود کلمات مقام معظم رهبری باشه عامل نجات هست بله دیگه خافیس برد او از همینش احتناده من تا در اجرا همدان همدن میکنن بر برخاطر حفظ مسالی که ممکنه مثلا در وزیفهی جه آرامی میشه،, میشه بیشه بهترشون اطراف کما شروعه کاملیکا میخواد داخل ما خراب شه اطلاعات بیکنن به الله اون دو سال هم نمی همینه دیگه فیده قفلی رو آمادن بروندشم تشمید بلده. اینا روشنه منطقه میخواهم چون یعنی از لحاظ قضاوت کردن همون کلماتی که خود آقا میفرمان برای قضاوت چون بیش از اون که میشه اختلاف زیاد توی قضاوت ها پیش مید اساس همونه همون خود آقا میگن اعتقاد داشته باشه کافی هست هرچی رو گفت شمون باشه از خطر فتنه محبوضی بود تو مالشو نبینیم میفهمی فتنه از خطرنایی که قاسبه میش الان مردم مردم الان می‌پرسند در مورد مسئولیه، مسئولانی چرا سویستن؟ گوش به حرفیشون بدن کافیش خود گفتن، هیچ گله نیست، این را با دست و باز می‌کنه، <تصفح> شما همینو می‌کنه <بگید. تصفح> پس را شما این سیره ای که بعضی از علما در پیش گرفتن، مثلا می‌فرماند رهبری به خاطر بعضی از محظورات بعضی صدرا نمیشه بگن اما دردی نمیشه که ما نگیم ما باید مردم رو به تدریج روشن کنیم درسته نگین اونم بود حرف نزنه رهبری نگفتن نگین ولی نگفتنم بگین به هر حال اگه رهبری میگه جف درست نکنید حرف نزنید فعلا نباید اسکوچ کنید ولی بدونید هیچ چیز بله ندونی خطرناک است بله بدونی حالت نفاق میش اومدی ظاهر باطن فرق کردی عمو فرانتش نگید تا بدونیم مشو